سنگی سرطاق خدا روازارتارز تمام اس را در سکوت روی صندلی نشسته بود و به نظر می‌آمد سخت در فکر است بنابراین من هم مشغله معمول خود را تمام کرده آماده رفتن به رخت خواب شدم بعد از مدتی نگاه خیرش رو به من دوخته شروع به صحبت کرد روازارتارز چرا امروز صبح؟ ساعت 8:30 دقیقه هنگامی که خطاب از کردم بیدار نشدی. پال فکر کردم یکی دو دقیقه دیگر استراحت اشکالی نداشته باشد اما وقتی دوباره به ساعت نگاه کردم 8:45 دقیقه بود. به دیگر این کار را تکرار نکن. همیشه هوشیار و آگاه باش. حتی برای یک ثانیه از زندگیت هم فراموش نکن که من با تو هستم. بگو دار این حقیقت همواره بر یه ذهن از منغوش باشد من در حال توتعه نوعی چالاکی در تو هستم که با آن بتوانی سرپا و بینیاز از هر گونه تخیر و تصمیم بگیری نام گفتگوی امشب را سنگ سرطاق خدا می‌گذارم. آیا می‌دانی سنگ سرطاق چیست؟ بخشی از قوس است که سایر سنگ های بنا را سر جایشان نگاه می‌دارد. به همین ترتیب در مورد انسان بخش ناخداگاه اوست که او را در عالم افلاک پاوادجا نگاه می‌دارد. این بخش مجرا است که از میان آن آدمی به سوی خدا صعود می‌کند و بالعکس. راهیست که از طریق آن خدا به آدمی نزول می‌کند. متاسفانه مقدار زیادی اطلاعات نادرست در خصوص این اقلیم پر ابهام از وجود بشر شایع شده است. ادعاها و اظهارات گمراه کننده ای که مکرران درباره آن مطرح می شود. قدرت های این اقلیم ذهن بسیار عظیم میباشند، لاکن این قدرت ها متعلق به بخش های تحتانی عالم میباشند. همان گونه که در خصوص سایر نیروها مستاق دارد، این قدرت ها هم میتوانند به منظور سازندگی و هم به منظور ویرانگری مورد استفاده قرار گیرند. آرامش صول و نیرومندی زندگی های ما می توسط این نیروها تعیین شوند و بستگی مستقیم دارند به نفعی که این نیروها در زندگی ما کنترل و هدایت می شوند. و اما در اینجاست که تمامی معمای آموزش ها قرار گرفته است حقایق خدایی در این اقلیم از جهان درون آغاز می شوند. در بدانتا، هندویسم، یوگا، الهیات و سایر آموزش‌ها این اقلیم را جهان ذهنی می‌خوانند اما این خانه حقیقی آدمی برای بازگشت نیست بلکه تنها یکی از آن جهانهایی است که او می‌باید از آن گذر کند و تحت هیچ شرایطی نمی‌باید در آنجا درنگ کرده و به سیاحت زیبایی‌های آن اقلیم پردازد اما افسوس که همه آموزش‌های حقایق خدایی در اینجا به نقطه توقف می‌رسند معلمین خود را با این فریب متقاعد کردهاند که اینجا سرمنزل وحدت آنان با خداست. قدرت های ظریف ذهن هر جستجوگری را فریفته و اقفال می‌کنند مگر اینکه او یک استاد حقیقی داشته باشد که واقعی راه به سوی خدا را به وی نشان دهد. در اینجاست که بسیاری از این اقفال شدگان متوقف گشته و اقدام به تأسیس امپراتوری‌های مذهبی و مکاتب اسرار می‌نمایند. تاغریبان مسیر سفر آدمی را به توی خانه حقیقیش ویران نمودند. اکنون این سوال پیش می‌آید. چه کسی را باور داریم؟ چگونه می‌توانیم دریابیم که آیا این قدرت ذهن کیهانی است یا عملاً قدرت خدایی است که زندگی‌های ما را هدایت می‌کند؟ تفاوت این دو در اینجاست. به ببینم چگونه می‌توانم آن را در عبارت ساده‌ای توضیح دهم. قدرت ذهن آنست که از طبقه ذهنی نشعت میگیرد. تا زندگی ما را از دیدگاه اقلانی هدایت کند به عنوان مثال راجعیوگا یکی از آموزش های ذهنی می باشد که به احساسات اشراقی یا الهامی خود جهت روشنگری در مواقع استراری اتکا کنند بر این عقیده اصرار خواهند ورزید که دست خدا در امور زندگیشان دخیل است این امر همیشه حقیقت ندارد زیرا که این خداوندگار جهان ذهنی همان جلوه ای از خداوند که ما به نام امکار می شناسیم است که قدرت خود را در این امر به کار انداخته است در واقعیت من خداوند جهان ذهنی هستم همان گونه که خداوند همه دیگر طبقات لیکن جستجویت در این وضعیت در حال بحروری از قدرت های تحتانی کال کیهانی من می باشد نجاگاه خدایی من می توانم هر گونه قدرتی را که تو، جهت برآورده کردن خواستخایت آرزو کنی بر تو ارزانی دارم اما به عنوان استاد توصیه می کنم که تنها بالاترین را جستجو کنی پیش از این که به مغوله قدرت اک بپردازیم پردازیم بگذار این را بگویم که اگر تو از درجه ای از حساسیت برخوردار باشی که بتوانی افکار دیگران را بخوانی پس بدان که فقط از قدرت ذهنی استفاده می کنی. معلمی که این گناه آموزش ها را از طبقه ذهنی ارزه کند با استفاده از سمبول های کلامی قوای متخیله تو را تحریک نموده و نوعی ارتباط سمیمانه از طبقه ذهنی با مرید خود پایه می کند او معمولا با سودجویی از نوعی جادوی ذهنی پیبندی با غالب مریدان خود برقرار می نماید که فراسوی درک آنان می باشد از نقطه نظر درونی او به طور معمول شخصی بی تفاوت و دارای روحیهی فاقد تعلق خاطر نسبت به همه می باشد اما در ظاهر گرما و شخصیتی محبوب از خود بروز می دهد که حاکی از عشق و محبت نسبت به کسانی است که او را هرچه بیشتریاری می کنند همه نویسندگان بزرگ فلسفه کسانی بودند که قدرت ذهن ناخودآگاه را شناسایی کرده بودند کسانی مثل رالف والدو امرسون او یکی از پیشکسوتان علوم ذهنی است البته عدد بیشماری از مکتبها و مذهب های دیگر نیز در همین ردیف قرار دارند من جمله بودیسم ودانتا مسیحیت صوفیسم و هندویسم و بسیاری دیگر که می توانیم نام ببریم هیچ یک از آنان در صورت امروزی خود چیزی فراتر از فهم و درک طبقه ذهنی آموزش نمی دهند طرفداران جریان صوتی آم پیروان آمکار، فرمان روای جهان ذهنی هستند. اوم یا آوم جریان صوتی آن طبقه می باشد. های اخلاقی این ادیان عظیم توسط مکاتب اسراری که در اواخر قرن 19 در آمریکا تشکیل شدند به نهو ناچایست مورد استفاده قرار گرفتند. اکنون اجازه بده به توضیح در خصوص قدرت اِف بپردازیم که قدرت عظیمی است که از مظهر الهی بالاترین طبقات سرچشمه می‌گیرد. طبقه خدایی حقیقت. اگر از این قدرت استفاده کنی، روح از میان طبقه ذهنی و طبقات بعد از آن عبور کرده و به بالاترین طبقات می‌رسد. کسانی که قادرند به ماورای قدرت‌های ناخودآگاه دسترسی یابند، می‌توانند این واقعیت را ببینند و بدانند. تفاوت در همینجاست. قدرت ذهن بر مبنای ایمان و عقیده اصبار است. قدرت اک بر اساس دانستن و دیدار یا بینش. بین این دو مفهوم تفاوت وسیعی وجود دارد. مثلا من میتوانم هرگونه هر گونه استنباتی را که قادر باشی آرزو کنی به تو ارزانی دارم. اما وسعت درک تو تا کجاست و تا کجا می توانی افق استنباط درونت را گسترش دهی؟ سؤال و مشکل اساسی در اینجاست که کلید معمای عبور از طبقه ذهنی به سوی طبقات ماورای آن در همین قابلیت نهفته است اگر به منظور انجام تکالیف روزانه خود به قدرت ذهن متوصل باشی نشان این است که ذهنتو به قدرتهای ذهن تو به واسطه قدرت‌های ذهن ناخودآگاه هدایت می‌شود اما اگر همه چیز در زندگی از توسط روح الهی اداره شود حتی آرزوی کوچکترین عاملی که به زندگی تو وارد می شود، در برخی موارد این چونین نیز هست، آنگاه خدا در مستر هدایت امور زندگی تو واقع شده است. تفاوت اساسی بین این دو صورت در اینجاست. اگر میخواهی قدرت های ذهن آزادانه در زندگیت از دخالت داشته باشند، ذهنت را آرام کن تا به جایی که بخش ناخداغاه مسلط شود. این واقعا نخستین قدم در راه رسیدن به خداست قدم بعدی فرونشاندن اراده ذهنی و دعوت کردن از استاد است تا همه امور زندگی تو را به دست گیرد آنگاه است که در حال بهرهوری از قدرت روح الهی اک خواهی بود اما اینجا یک مورد وجود دارد که می باید همواره به خاطر داشته باشیم آنچه که ما به خدا واگذار کنیم هزاران بار بیشتر برایمان مان منفرد بار خواهد بود تا آنچه که به اراده خود بسپاریم. آموزش بنیانی دانشمندان ذهنی بر این مبنا اصفار است که ما بدون تردید بخشی از آن چیزی هستیم که اندیشیده ایم. بنابراین ضروری است که با دقت بسیار و همیشه افکار و تصوراتی را که روزانه به طور جدی مد نظر می گیریم مورد تبعیض درست قرار دهیم. چون این افکار و تصورات بخش عمده ای از ما را می سازند. اگر برای بخش ناب خداگاه خودمان مسالله خوبی تأمین کنیم، میتوانیم مطمئن باشیم که زندگی خوبی به ما باز خواهد داد. اکنون با تعدادی از موارد مشرح درباره ذهن ناب خداگاه میدانیم یک اینکه معجزات قدرت فکر ناگزیر از رخ دادن می باشند، دو، اینکه افکار ناب خداگاه از اصل انعکاسی تبعیت میکنند سه، اینکه ظهور افکار و راه حلهای ذهن ناخداگاه میتوانند مورد پرورش و گسترش قرار گیرند چهار، اینکه صورت زریف و جوانه درونی نوعی اعتقاد مثبت به عنوان یک زریب بسیار مؤثر جهت پرورش و کشت قدرتهای ناب خداگاه ضرورت دارد نحوه ایجاد این صورت نخستین اعتقادی را خود الغایی مینامند. هنگامی که نوابق در خلال مقاطعی که به نشعه ذهنی مشهور است با ارزشترین ایدهها و الهامات هنری را دریافت می کنند، در حقیقت نیروهای کل می باشند که در روند آفرینش دستندرکارند. بیا روش آهنگسازی مزارارت را با ب مقایسه مقایفه کنیم. مزارارت از سرفزاران بیلیارد بود و دائما بازی میکرد او در خلال بازی تکه ها و مقاطع موسیقیش را دریافت میکرد و آنها را در یک دفترچه یادداشت داشت می نمود. بعد از روی آن یادداشت کار خود را کامل میکرد در حال بازی بیلیارد پلوت جادویی، نغمهای ورایش می سرود از سوی دیگر به در تسخیر و مزهور مجموعه نقماتی می شد که وی جاری می شدند. آنگاه جزئیات آن را میان سازها تقسیم می کرد تا قابل اجرا باشد پس جستجوی او برای یک تم اصلی در واقع به این معنی بود که می بایست عظمت نقمات بیوقفه آسمانی را به جزئیاتی در ساده ترین صورت قابل نواختن تقلیل دهد پس می بینی که کسانی که تحت قدرت های ذهن عمل می کنند فقط می توانند و جزئیاتی از کل پیام را دیده و به کار گیرند آنهایی که تحت قدرت ماهانتا عمل می کنند کل موضوع را می بینند سپس آن را به ساده ترین بیان در جز تقلیل می دهند. بزرگترین مشکل عمل کردن تحت وضعیت آگاهی ماهانتا همواره همین بوده است که تکنیک لازم جهت تقلیل دادن صحوی عظیمی که در یک لحظه دریافت می شود، به مقیاس یک اتم در اختیار نبوده است. به همین علت تو همواره با شماری از مسائل کیهانی دست به گریبان بوده ای که اگر استاد هم راحت میبود، به راحتی در معرض نتیجه گیری واقع میشدند. هیچ کس نمی توانست تو را با این همه مشکلات درونی کمک کند. تا، من آمدم و حال میدانی که علت همه های زندگی تو نیست همین بوده است. بسیاری دیگر هم هستند که همین مشکل را دارند. روشنگری یا نوری که در طبقه ذهنی بر آدمی عارض می شود ناپایدار است. برق کوتاهی در ذهن میزند و ناپدید می‌شود. مرید میکوشد آن را نگاه دارد چون نمیداند که اگر میگذاشت، سفیری هجاب را بگشاید، نور و سوت به آهنگ خود نمی‌آمدند و در زندگیش حضور دائمی می‌یافتند. یکی از افکار امرسون در خصوص طبیعت فریبنده زندگی ذهنی این بود: از اندیشه‌هایت مواظبت کن. آنها همانند پرنده تازهواردی بر شاخ درخت تو مینشینند و به محض اینکه سر به مطالعات خود فروبری ناپدید پدید می شوند. خداگاه هم از این قانون مستثنا نیست. تمامی قدرت های بنیانی میباید از خدا آغاز گشته و در خدا پایان یابند و این علورغم جایگاهی می باشد که از آنجا برخواسته باشند. روحیه آرام و اندیشمندانه برای فعالیت ذهن ناب خداگاه مناسب می باشد و شرایط لازم را برای ترفیق فعالیت های, های جهان فانی یا مادی و جهان باقی یا معنوی فراهم می کند تحت شرایط پرفشار قضرت ذهن ناب خداگاه نسبت به تلاش ذهنی در جهت حل یک مشکل واکنش نشان می دهند ترین هیسو زمینه اعتقادی زریب کنترل کننده میباشد و یقین به ظهور نشانه ای که دلالت بر دریافت پاسخ صحیح داشته باشد از ضروریات حتمی است اغلب برای رسیدن به راه حل مناسب جهت مشکلاتی که پیش می آیند انرژی های عظیمی مصرف شده و نتایج چشمگیری نیز گرفته می شود به خصوص پشت میز کنفرانس های تجاری، سیاسی و اقتصادی آموزش دهندگان طبقه ذهنی دو اصل اساسی در خصوص قدرت های ناب خداگاه را نشان می دهند. یک، ما می باید ما هر شک و تردیدی بدانیم و اعتقاد ببرزیم که در تصاحب این قدرت های ناب خداگاه و دو، اینکه ما قادریم و معالن آنها را به کار خواهیم گرفت اغلب روزها، هفتهها و ماهها تفکر درست و مراقبه بر روی مشکلات ضروری می باشد اما بعد از اینکه این, این قدرتها کسب شده و بخشی از زندگی طبیعی و معمول ما شدند، به گنجینه ای گرانبهایی بدل میگردند و نخستین قدم ما را به سوی رسیدن به منزلگاه خدایی میسر می‌سازند. و اما در طبقه ذهنی همانند سایر جهانها، یا باید این را بدانیم که در حال سودجویی از قدرت لطیف یا نامرئی هستیم یا محکوم به سرگردانی و سردرگ می خواهیم بود. اصول اساسی این بهرهوری عبارتند از یک. با بردباری به خود فرصت اندیشیدن داده و اهداف لحظه ای و هدف نهایی زندگی خود را تعیین نماییم؟ دو. آیا پیشروی ما متکی به استفاده از روش قیاس به کل است؟ عموما روشی که مطلق بودن قدرت های خداوندی را مد نظر دارد و متکی به دریافت‌های درونی بیواسته، الهام و می باشد یا به روش قیاس به جز عمل می کنیم عموما آنچه به روش اقلانی موسوم است و سه تا به کجا رسیده این و باقی راه را چگونه تصمیم داریم به پیمایی. بزرگترین نکته در این مرحله از طی طریق آموختن رابطه علت و معلولی است که می باید دقیقاً بیشیابی شده و مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. همیشه تشخیص دادن بین اینکه علت کدام است و معلول کدام کار آسانی نیست. قدرت‌های نامحسوس اغلب موجب سردرگمی در این باره می شود که اول کدام است. در اغلب غذابت ها تشخیص نادرست بین علت و معلول حاکم و محکوم باعث می نتایج اصف ببارایند. به عنوان مثال بسیاری از اوقات نگرانی تو از بابت شکست بیمورد بوده است در مقیاسی قابل توجه شکست نتیجه نگرانی و ترس بوده است و نه بالعکس یک چون این عکس عملی در رفتارت چرخی درزنده ای را ساخت که زنجیره علت و معلولی وقایع آن بر شخص تو معلوم نبود در طی روندی که علت و معلول از انرژی یکدیگر تغذیه می‌کنند اغلب زنجیره وقایع تو را تا به حد فرسودگی میکشانید. این شرایط میتواند به این ترتیب حل شوند که مشکلات را به ماهانتا و قدرت اک واگذار کنید به خاطر داشته باش که نیروهای نامحسوس درون آدمی همسانند اما آنچه اهمیت دارد نهزه است که ما آنها را به کار میگیریم اگر ما این نیروها را با نیتهای منفی تغذیه کنیم نتیجه منفی از آن خواهیم گرفت ما این محدودیت را بر برخود می‌نهیم که به قدرت خداوندی درون فرصت نمیدهیم تا از طریق ذهن ناب خداگاه ما عمل کند که این ترتیب در خواهی یافت که بشرته یک قرون متمادی از محتوای منفی بسیاری از کتب مقدسه باستانی تغذیه نموده است یعقوب میگوید آنچه آن از آن حراس می داشتن به سرم آمد این یک گفته كهن از آموزش‌های ذهنی است ما فرسنگ‌ها پیشتر از اینها به درون اقلیم معنوی تعلق داریم یعقوب به روش منفی با جریان قدرت الهی سخن میگفت. گفت می توانیم بگوییم که زمیر ناخودآگاه نخصن قرائز نژادی ما کاران شریر یا کالبد علی میباشد. با علم به این ما خود را تحت تأثیر نشانه هایی خواهیم یافت که از زندگی ها، اعتقادات و شرایط محیطی گذشته ها و حال نتیجه شدند. چگونه می بر این تأثیرات پیروز شویم؟ ذهنیت گرایان میگویند با خود الغایی یا آموزش هایی بر این مبنا که خدا جمع نیکی هاست، مانترام یوگا یا هر گونه دیگری از شیوه های محلوک افکار، به منظور صاف نمودن زمیر ناخداگاه به هر حال این پاسخ نهایی نیست زیرا آگاه هستی که تا هنگامی که آتما استاد صحنه دیده درون را انباشته نسازد فرد در خلع به سر میبرد آدمی میباید یک مظهر بسری داشته باشد حتی اگر قرار باشد آن مظهر تصمیر یک سگ یک گربه یا یک سفیر باشد اما باید بر دروازه بینش درون در مقابل چشم معنوی قرار داده شود و به این ترتیب سفیر میتواند اطمینان حاصل کند که طیف ارتعاشی آگاهی تو تا به بالاترین نقطه ممکن دست تناسب با مرحله ای از پیش درون که به سر میبری رسیده باشد و به توانی در جهانهای درون سفر کنی به طور کلی قدمی که در این مرحله از طریق باید برداشته شود پایان دادن به ستیز درون و مهار کردن نیروهای غریزی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از زمیر ناب خداگاه آدمی می باشد کشمکش و ستیز بخشی از هر دو رکن هم ناخداگاه و هم خداگاه می باشد. اگر یک اعتقاد منفی در ما وجود داشته باشد به علت عدم کفایتی است که در رابطه با رسیدن به منظورمان در خود احساس میکنیم این احساس ارتباطی به نوع کاری که در دست داریم ندارد بلکه به صفات شخصی ما مربوط می شود. اغلب اوقات این نوع اعتقادات زائیده ترس یا مشتقات آن شک و حیجان می باشد. دانش مربوط به کنترل کردن این قدرت یکی از کلیت های اسرار خدایی است. با استفاده از قدرت های زمیر ناخداداه آدمی به وضعیتی از نگرش خیش با عنوان یک روح و نقطه نظری در حد بلوغ دست پیدا می کند اگر میل داری می توانی این وضعیت را بلوغ در خیشنگری بنامی حال بزرگترین مسئله که با آن روبرو خواهی بود این است که تفاوت بین انگیزه دستیابی به وضعیت ایدئال یا مطلوب آرزوها و ای را که در متن بیتفاوتی اتفاق می دریابی اگر قرار باشد جستجوگر فقط در پی اکتساب صفات برگزیده و خدایی براید معلوم می شود که تحت آموزش های نادرستی قرار گرفته است زیرا می باید هدف تازیانه نیروهای قریزی خود واقعی گردد که به طبع خود بال سنگینی از حیجانات هراسالود و انباشته از شک و تردید نسبت به توانایی وی به همراه داشته و دیدیازود در خواهد یافت که کالبرهای چندگانش میدان نبرد این نیروها واقع شده و از هم پاشیده خواهند گشت یک چون این فردی در پایان کارد چندان فاصله ای جلوتر از کسی نخواهد بود که به تازگی استاد را یافته باشد خود را به من واگذار کن این را از من بشنو در طلبه هیچ قدرتی نباش مگر والاترین قدرت های خداوندی و من استادتو اطمینان حاصل خواهم کرد که از زندگیت موازبست و محافظت به عمل آمده در یک که مراحل طریق معنوی به همراهت خواهم بود میبینی چرا گاهی نیروی کل خسارات بزرگتری در سحنه نبرد درونت باقی گو داشته است او فقط قادر است از نیروهای تحتانی استفاده کند و این در خصوص همه مریدانش مستاق دارد هیچیک از پیروان کل به جز با نیروهای تهدانی قادر به عمل کرد نمی باشد. به همین علت آموزش های او از برترین نوع نیستند. هرچند او اینچنین ادعا می کند. در حقیقت کل در مقام تجلی خدا هر آنچه را که حقیقت می‌داند بازگو می کند. از این نقطه نظر راستگو می باشد هنگامی که به سوی من می‌آیی. آنگاه زندگیت تغییر میکند و به رفیعترین مقامات خداوندی نائل خواهی آمد مشروط بر اینکه بدانی این مدارج بالاچه هستند و آرزوی آنها را در سینه داشته باشی. در اینجا بحث را متوقف میکنیم شب برایت توضیح خواهم داد چرا آموزش های شرقی بر مبنای محکمی و نیستند شب به با این کلام ربانتارس از جایش برخاست، به طرف در وروجی رفت و در میان تاریکی درگاهی ناپدید شد